افسونه افسانه به نام خداوند بخشنده مهربون، دوستان نازنین رادیو نمایش، سلام باز هم ماییم و شما و روایت افثانهی که میتونه نقشی از واقعیت رو در سطر سطرش داشته باشه هرچند بسیاری از افسانه ها هم برامده از تخیل افرادن اما هیچ افسانه ای رو نمیشه دید که حامل پیام یا درس و حکمتی نباشه اینجاست که ها میشه نمادی از فرهنگ یک کشور یا یک ملت افثانه رو که در این برنامه میخواییم خدمتتون روایت کنیم یه افسانه روسیه به نام سادکو امیدواریم تا پایان این برنامه همراه ما باشین و این داستان رو دنبال کنیم گذشته بسیار دور در روستایی دور افتاده جوان فقیری به نام سادکو زندگی می کرد. سادکو گاهی با کشاورزی و گاهی با چوپانی برای دیگران عراتشو میگذراند. تا اینکه یه روز وقتی در صحرا مشغول کشاورزی بود مرد نوازند به او نزدیک شد. چه دلانگیزی چه هوای با نشاتی زمین چقدر سبزه آسمان چقدر آبی سلام برد جمعان تو کی هستی؟ من یه دوره کردم اینقدر اومدم و اومدم تا به این روستا رسیدم میشه بگی اسپریس هرزم این چیه؟ اینجا ولیکی نوگیروده به نظر زیباست زیباست خیلی زیباست با طبیعتی بکر رو دست نخورده فکر کنم عطر گلهاش منو به اینجا کشوند کارت چیه؟ کشاورتی یا چوپانی؟ هیچ کدوم من یه نوازندهی دوره گردم از این شهر به اون شهر از این رستا به اون رستا میرم و ساز میزنم ساز؟ هم. چه سازی؟ گسلی، تا حالا یه گوسلی رو هم نزدیک دیدی؟ نه میدونم چیه، نه اسمشو شنیدم آه. و نه صداشو بهنظر به نظر من که زندگی بدونه صدای گوسلی هیچ لذتی نداره ببینم چند وقت ساز میزنی؟ سال هاست ساز زدن رو از کیات گرفتی؟ از پدرم، پدرم هم از پدرش، پدر بزرگ از پدرش راستی، نگفتی اسمش چیه؟ آه ساتکو ساتکو دلت میخواد صدای گوسلی رو بشنوی؟ ها معلومه که دلم میخواد مم، بسیار خوب. پس بریم زیر سایه اون درخت بشینیم تا من گوسلی به و پرندگان آواز بخونن و تو هم لذت ببریم باشه. ها. بریم. بریم. نوازنده دورگرد ساعتها برای سادکو گوسلی نواخت. گفته میشه گوسلی ترین ساز ذهی روسی است که شبیه سنتوره و با انگوش نواخته میشه. القصه سادکو از نوای گوسلی خیلی خوشش اومد و با نوای اون رویاهای شیرینی در ذهنش شکل می گرفت. اون حالا به نوازنده دورگرد خو گرفته بود اما از اونجایی که هر شروعی پایانی داره، سفر مرد دورگرد هم به پایان رسید. و وقت رفتن شد کاش میتونستین چند روز دیگه اینجا بمونیم نمیتونم سادکا من یه دوره گردم با موندن و سکون میونه ای ندارم تو چرا ما با من نمیای؟ من درامدی ندارم نه درامدی نه هنری اموراتم با کار کردن سر زمین های این و اون و نگه داشتن و گله دامدارا میگذرونم اگه با تو بیام اموراتم نمیگذره ببین سادکا بله میتونم یه چیزی ازت بپرسم البته آه. تو خونواده نداری؟ نه آه. من تنها یه وقتایی تون آسیا به قدیمی میخوابم و یه وقتایی هم تو اتاقکی که کنار فانوس دریایی متاسفم ببینم سات کنم. از صدای گوسلی خوشت اومده خیلی اینقدر زیاد که شبام وقتی که میخوام بخوابم صداشو تو ذهنم تصور میکنم <تصفيق> اصلا اصلا شبا با صدای گوسلی میخوابم اگه یک گوسلی داشته باشی چیکار میکنی وای آه. خدای من حتی تصورشم نمیتونم بکنم به نظرم به نظرم گوسلی یه ساز جادویی حتما همینطوره فرض کن یه گوسلی چی چیکار میکنی؟ اگه گوسلی داشته باشم اون وقت حتی شبام با تموم خستگی میشینم رو روی این دریاچه و گوسلی میزنم انقدر میزنم میزنم تا این آسمون و این زمین و این درخت و گلا با صدای گوسلی همه با هم با من دوست بشم خیلی دیخور سبکون آه، آه، پس این گوسلی مانه تو ها؟ نه نه نه نه, نه. من نمیتونم اینو از شما قبول کنم چرا برای اینکه برای اینکه شما یه نوازنده دوره گردین و با نواختن این ساز اموراتتونو میگذرونید درسته اما من میتونم به اولین شهری که رسیدم برای خودم یه گسلی بخرم نگران من نباش بگیر ولی بلی... بگیرش این یه هدیه است نمیتونم واقعا بد باعت... چطور ازتون تشکر کنم؟ تشکر لازم نیست اگه بتونی یه روز گوسری رو به خوبی بنوازی برای من بهترین تشکر و قدردانیه قول میدم قول میدم یه روز به زیبایی خودتون ساز بزنم چه قول خوبی مرد دورگرد گوسلی رو به سادکو داد و از اون روز تار رفت. سادکو که از صدای گوسلی خیلی خوشش اومده بود، با تمام خستگیای روزانه شبا تا صبح بیدار میموند و گوسلی میزد. سادکو اونقدر گوسلی نواخت و نواخت تا در نواختن این ساز مهارت زیادی پیدا کرد. اون حالا زمین و آسمون و گل و درخت و مسحور صدای گوسلی کرده بود. تا این که آوازه صدای دلنشین گوسلی سادکو به گوش شهرهای دور و نزدیک رسید افزون نگاه تو است ای جبون. ایش. ایش. جبون. تو باید سادکو باشی درسته؟ بله من من چوپان این گلم خیلی قشنگ گوسلی میزنی این ساز هدیه یه دوسته همون دوستم هم به تو یاد داد اینقدر زیبا به نوازی؟ نواختن رو تنبین کردم ماهاس که در خلوت خودم گوسلی میزنم خونت کجاست؟ خونه ندارم یه وقتای کنار آسیاب قدیمی و یه وقتایی هم توی اتاقه که کنار فامیس دریایی میخواد. پدرم همیشه به من میگفت خبر خوب و یه به کسی نگو منظور چیه؟ منظور من یا پدرم پدرتون منظور پدرم این بود که ممکنه اون آدم انقدر حیران زده بشه که یا بیهوش بشه یا اینکه اون یه دفعه از دار دنیا بره منظور چیه؟ منظور من یا پدرم؟ منظور شما؟ تو چطور متوجه منظور من نشدی؟ صادق گفت. خب، من معمولا اولاً مبهم حرف نمیزنم درسته، بهتر واضح تر حرف بزنم. <تصفح> تو میدونستی است بهترین نوازنده این حوالی هستی؟ اوه! واقعاً نمیدونستم ولی حالا بدون. مردم میگن تو بهترین نوازنده این حوالی هستی و هیچکس کس نمیتونه به زیبایی تو گوستی بزنه. ممنونم من ازت تعریف نکردم این نظر مردمه <تصفح> پس باید از مردم ممنون بشن میگن تو انقدر خوب ساز میزنی که میتونی با همین هنر کلی پول در بیاری تا <تصفح> الان اینجوری بهش فکر نکرده بودم از این به بعد فکر کن ایچ نیست یه روز تو با این ساز به اوج ثروت و قدرت برسی متوجه منظورتون نمیشه. <تصفح> <تصفح> تو به دربار دعوت شدی سادکو چی؟ <تصفح> <تصفح> چی گفتین؟ گفتم تو به دربار حاکم ولیکی نوگروت دعوت شدی. خدای من، خدای من. من دارم خواب می‌بینم؟ ناصادکو، تو بیداری و من به عنوان سفیر حاکم ازت دعوت می‌کنم همراه من به دربار بیای. من برای چی باید به دربار بیام؟ چرا حاکم از من همچین دعوتی کرده جناب سفیر؟ برای این که از امروز تو به استخدام حاکم و دربار در اومدی، تا تو جشت ها و مهمونی های رسمی و خانوادگی برامون گسلی بنوازی. وای وای خدای من دربار حاکم یعنی یعنی چی؟ یعنی اینکه حمای سعادت روی شونهای تو نشسته صدکو کمتر پیش میاد این اتفاق برای جوون جوان فقیر مثل تو بیفته. زود باش وزایلتو جم کن با من به دربار بیا زود باش باشه باشه حتماً سادکو همراه سفیر حاکم به دربار رفت و قرار بر این شد که در مهمونی های رسمی و خانوادگی برای اهالی دربار ساز بزنه. سادکو حالا تبدیل به یه نوازندگی معروف شده بود. تو مهمونی افراد سرشناس هم شرکت می‌کرد و پول خوبی بابت نوازندگی می اما زندگی همیشه اونجوری پیش نمیره که ازش انتظار داریم. یه روز در دربار اتفاقی افتاد که مسیر زندگی سادکو رو تغییر داد قفل کن صدای این ساز لعنتی و سادکو صدای این ساز مثل صدای کلاغای نوگرود من هیچ وقت صدای هی ساز خوشم نمیومد اگه درخواست حاکم نبود هیچ وقت فراق این یه فقیر فقیره سال و پون نمیرفتم آی ای دواتون نیستم سازو خفه کنی سازو ها کنترل کنین جناب صفی من به دستور حاکم دارم گوسلی میزنم تو اصلا داری از دستور من سرپیچی میکنی؟ یادت رفته کی هستی و قبلاً چه کاره بود؟ یبنه؟ من میدونم کی بودم و چه کاره بودم جناب سفیر ولی موضوع سرپیچی نیست موضوع اینه که مهمون همه دارن از شنیدن صدای گوسلی لذت میبرن تو همچین شرایطی من نمیتونم ساز زدن و قطع کنم بستم کردی؟ گفتم خفه کن ساز لعنتی و یه دستوره ای منم که دارم به تو دستور میدم به سرگ سر ایگه بیستر و پایه بی اصل و نصف حق. تو حق نداری به من توهین کنی من هر کاری بخوام میتونم انجام بدم برا از این دربار برو رو بیرون دیگم اینجا بر نگر مطمئن باشید هم این میکنم همین الان میرم سادکو به خاطر توهین سفیر از دربار بیرون رفت و دوباره شروع کرد به کشاورزی و دامداری برای این و اون. اون قروبا کنار دریاچه ایلمن مینشست و گوسلی میزد و از نواختن اون ساز لذت می برد. تا اینکه یه روز عصر وقتی مشغول نواختن بود، شاه دخت دختر پادشاه دریاها از اعماق آب صدای ساز زدن سادکو رو شنید. این صدایی چیه چه صدایی دل نشید. چه صدایی آرامش بخشی تا حالا این صدایی نشنیده بودم به نظر میاد صدایی از طرف ساحل خدای من انگار سواله هاست این صدا تو بویش برو شاد بود برو انگار یه نفر که داره سهلی لشسته و ده با سازی زنه باید برم نزدی من اون اون جوان چقدر سیب خوب برازنده هست سلام مرد تو کی هستی؟ نه ترس من شهادختم دخته پادشاه دریاه ها تو از کجا آمدی؟ با من چیکار کار داری؟ تو نباید از من بترسی، من با تو کاری ندارم فقط فقط از شنیدن صدای این ساز لذت بردم و به طرف صدا اومدم آه. این ساز این ساز اسمش گوسلیه تو جوان برزنده ای هستی زیبا بود تنومند با من به دریا پیسو پدرم بادشاه دریا باز. چیک دست اون داره استیور این میذاره. تو میتونیم با هم ازدواج کنیم و خوشبخت بشی. نه شاه دختر نه. من و تو نمیتونیم با هم ازدواج کنیم. برای چی؟ برای اینکه من به یه دختر دیگه علاقه دارم نمیتونم با تو ازدواج کنم. خب اگه به دختر دیگه علاقه داری چرا با اون ازدواج نمیکنی؟ خب شاید اگه این بار دمش بهش پیشنهاد بدم تا با هم ازدواج کنیم. بسیار خوب از بس بهتر من از اونجا نیرم. ولی ولی قبل از رفتن باید بهت یه چیزی بگم چی؟ فردا این دریا چه پر از ماهی میشه که پروبال طلایی دارن اگه تونستی فردا به اینجا بیا و تا میتونی برای خودت ماهی های تلایی سهید ببینم برای چی داری اینا رو به من میگی؟ برای اینکه علاقه مو به تو ثابت کنم فردا روز تو ساد میتونی هر چقدر که دلت بخواد ماهی طلایی صبت کنید ماهی طایی ماهی تلایی با وعده ماهی های ذهن سادکو را حسابی درگیر کرده بود سادکو حرف اونو باور کرده بود پس به شهر رفت و به تاجرا و ثروتمندان شهر گفت که دریاچه فردا پر از ماهی های تلایی میشه اونا حرف سادکو رو باور نکردند. سادکو با افراد ثروتمند شرط وز که اگه چون این اتفاقی افتاد اونا رو به سادکو بدن اونا هم قبول کردند. فردای اون روز همونطور که شاهدوخ گفته بود دریاچه پر از ماهی های طلایی شد. ثروتمندان هم به قولی که به سادکو داده بودند عمل کردن و سادکو یه شبه صاحب و مالک چندین کشتی تجاری شد و در زمان کوتاهی اون هم یکی از ثروتمندان اون سرزمین به حساب اومد. تا اینکه یه روز آفتابی کشتی های سادکو، اسیر طوفان شدند آی بیکن تو داشت باید بنار رو بکش این شده جرا به صدقه داریم برمیشیم یعنی چی داریم برمیشیم بکستیم کشتی شکسته آز چه کشتی سراخ شد و آق دارو زود به بگو بیا روی ارشه اجاله کن بیا اینجا بین که بیا داریم منحرف حرف میشی به سمت چپ داریم منحرف حرف میشی به سمت چپ سکاندار بورن سکانو به چپون سمت راست بیا ورا من بچس میسج دو پای گشت و वगैरह رو با خودش میبره چشی داره پر از آب شده چیکار کنه جلسا تو میدونم خشم این دریا چه خاطر چیه بیکو عثمان باچاه دریاها عصبانی بیکو علی جناب بس تو خیلی زود کیسه های نوبرمت از داخل دریا اونها رو به دریا ها هدیه بدید تا این همه عصبانی نباشه بزاد میشه جناب بس تو این صحای نوبره نظر می ریسه پاچه ها خیلی عصبانیه کیسه های تلا هم بینداز تو دریا تا عصبانیتش فروکش کنه میکنم چشون تو همه کیسه های تلا رو به دریا انداختم ولی همه هنوزم توفانیه چیکار کنه؟ کنیم جناب تو. ببا الان همه من دارین فریچ می رساند نام رسپکو بیا ببینیم تا بیت میکاپ چالش دوستانه اتون بیا پادکو که متوجه شده بود پادشاه دریاها از دست اون از به بنکو گفت که یه نفر باید در این دریا قربانی بشه تا پادشاه دریاها آروم بشه به همین دلیل هم اسم هر کدوم از خدمه کشتی رو روی یه تیک چوب نوشت اون به همه اعلام کرد که چوب هر کسی که وارد آب شد اون شخص باید قربانی پادشاه دریاها بشه در نهایت هم اسم خودشو روی یه پر نوشت چون مطمئن بود که پر به خاطر سبک بودنش هرگز به عمقه دریا فرو نمیره در آخر در کمال نابوری این پر بود که خیلی زود در آب غلب شد بسیار خوب به نظر میرسه باچه های دری ها قستر من قربانی بشم تا این دریای های آروم بشه به. من حاضر ام شما خودم و به دریا بندازم چرا به سادکو نه اینطور که به نظر میرسه پادشا هیچ چیز و هیچ کسیو غیر از من نمیخواد اگه شما وارد دریا بشین من این همه چشتو خدارو چطور حذرت کنم چه وساکو کن. معلفانه با هوشییستی ببینكم از دو حال خارج نیست یا من به عمق دریا میرم و کشته میشم یا اینکه زنده برمیگردم در هر دو صورت تو باید مسئولیت این کسیارو به عهده بگیری حتی اگه من مردم این یکی که باید مراقب اونا باشی و ازش مراقبت تو هم جناب چرا کن بسیار خوب. من برای رفتن به عمق آب دارم. این کشتی ها و خدمه را به تو می‌برم بگو. خدا حافظ. اه! خدا حافظ. جناب سات کن. خودشو به دریا انداخت و به اعماق دریا رفت در اونجا ملکه و پادشاه دریا زندگی می کردن سادکو وقتی به اونها رسید متوجه شد که پادشاه و ملکه مشغول جر و بس با هم دیگه هستند. فکر کنم تو این چند سالی که با هم زندگی کردیم به ثابت شده که نظر من هیچ وقت اشتباه نبوده و نیست جناب پادشاه درسته، ولی این مورد با بقیه موارد فرق میکنه من اکیه من هنوزم فکر میکنم که روسیه بیشتر از هر چیزی به طلا میگذره وقتی در کشوری تلا به بفور یافت بشه اون کشور سربتمنده، معموران سربتمندن، حاکم سربتمنده و در نهایت مردم ثروتمندی هم خواهد داشت درسته، درسته درست. اما به نظر من ارزش آهن بیشتر از تلاست میدونی چرا؟ مم. چون مردم با آهن میتونن خونه هاشونو بسازن نه با تلا متاسفم عزیزم ولی نمیتونم با موافقت کنم چون تلا ارزشش خیلی بیشتر از آهن این تلاست که میتونه برای کشوری مثل روسیه با ارزش باشه بسیار خوب اگه فکر میکنی نظر من اشتباهه میتونی نظر ساتون هم بپرسی اون روی زمین زندگی میکنه و بهتر از من و تو میدونه برای روسیه آهن با عرضش یا تلا چی <متدار> میگی سادکو؟ تو با من موافقی یا با ملکه؟ با عرض معذرت باید بگم که من با بانو ملکه موافقم <متدار> به نظر منم بدون تلا میشه زندگی کرد <متدار> اما بدون آهن زندگی ممکن نیست جناب پاترون چی داری میگی سادکو؟ یعنی تو داری با نظر من مخالفت میکنی آه، آه، خدای من این این این چه صداییه صدای صدای این سازه صدگا این چه سازیه چه صدای دلنشینی داره اسم این ساز گوسلیه جناب پاچه تو چقدر زیبا ساز میزنی تا به حال همچین صدای دلنشینی نشنیده بودم شد سپاس گذارم جناب پاچه چه صدا زیباست چقدر زیباست سکو به من دیگستان ولی جناب پادشاه خوشحال شدن بانو بله بله اما خوشحالی اون باعث میشه که شاه تمام وجود به این طرف و اون طرف بره و همینم دریا رو متلاتم و طوفانی میکنه تمامش کن سادکو میشه میشه شد چرا دیگه ساز نمیزنی؟ متاسفم جناب پادشاه یکی از سیمایی ساز پاره شده قول میدم در اولین فرصت اون درست کنم و دوباره براتون ساز بزنم بسیار خوب حالا که اینقدر خوب ساز میزنی دلم میخواد بهت پیشنهادی بدم کو چه پیشنهادی؟ خیلی زود تعداد زیادی از دختران زیبا روی دریا مقابل تو به صف نیستم و تو میتونی یکی از اونها رو به همسری انتخاب کنی من؟ بله تو؟ تو جوان لایقی هستی و باید خیلی زود ازدواج کنی تا فرزندانی مثل خودت متولد بشن و بتونن به همین خوبی ساز بزنن این پیشنهاد عالی سادکو یه پیشنهاد عالی خب... چی میگی؟ چی میگی سادکو؟ چی میگی؟ من, من قافلگیر شدم بانو ولی اگه من جای تو بودم به اینکه این که زده بشم آخرین دختری رو که در صف می به همسری انتخاب می آخرین دختر؟ بله آخرین دختر اون دختریه که می تونه تو رو خوشبخت کنه اون روز پادشاه 900 دختر زیباروی دریایی رو یه جا جمع کرد و از سادکو خواست که یکی از اون دخترها رو به عنوان همسرش انتخاب کنه سادکو رفت سراغ آخرین دختر و اون انتخاب کرد و اون دختر کسی نبود جز شا تو تو اینجا چی کار میکنید شا دخت. من که گفته بودم دختر پادشاه دریا ها هستم سادکو آره گفته بودی ولی ولی فکر نمیگردم دریا این همه دختر داشته باشه اینا همه خواهرات هستن؟ <تصفيق> نه من تنها دختر پتراه دریا ها هستم. اینها دختران دریایین که در اعماق دریا زندگی میکنند باور نمیکردم بعد از این همه سال دوباره تو رو اینجا ببینم. از آخرین باری که تو رو دیدم دوازده سال می آره. دوازده سال میگذرم <تصفيق> تو این سالها تو خیلی من شدی موقعیت خوبی پیدا کردی و همه تو رو میشناسم. همینطوره من کشتی های تجاری زیادی دارم به تمام دنیا سفر میکنم و مشغول تجارتم خب حالا حالا من بعد چی کار کنم تو از بین این همه دختر منو انتخاب کردی درسته؟ بله چون به من گفتن که بهم نیست که کی به تو چی گفت مهم اینه که تو منو انتخاب کردی و ما باید با هم ازدواج, ازدواج کنیم. ولی بل... من نمیخوام با تو ازدواج کنم شاه تو. برای چی؟ برای اینکه اگه با تو ازدواج کنم مجبورم همینجا در اعماق این دریا زندگی کنم. خب زندگی کن. در عوض ما میتونیم در عمق این دریا خوشبخت بشیم. نه. من دلم میخواد روی زمین زندگی کنم. من برای زندگی در اعماق آب به دنیا نیومدم. جای من اینجا نیست. همونطور که جای تو روی زمین نیست حالا که اینجا هستی میخوام حقیقتی رو به تو بگم کن چه حقیقتی؟ تو تموم سالهایی که زندگی خوبی داشتی تو این سالهایی که ثروتمند بودی و صاحب کشتی های تجاری بزرگی شدی یه بار از خودت پرسیدی کی باعث شد به این موقعیت برسی؟ خب اعتراف میکنم که نه متاسف برای کی؟ برای تو چرا؟ چون آدم قدردانی نیستی همینم باعث شد که پدرم عصبانی بشه با هوای دریا یارو طوفانی کنه. یعنی یعنی توفانی شدن هوا امدی بود من. به خاطر اینکه در تمام اون سالها حتی یه بارم حاضر نشدی به خاطر لطفی که من در حقت کردم. ازم تشکر کن. باورم نمیشه شاه تو شما نباید با من این کارو کردی. این کمترین مجازات برای آدم قدر نشناسی مثل تو است. کن. ولی من از روی عمد این کار رو نکردن تو همیشه باید یادت باشه که چی و کی باعث شد به این موقعیت از برسید. اما فراموش کردی. حالا من باید چی کار کنم حالا هم برو برو ولی یادت باشه اگر در زندگی قتل دانی کسانی که بهت لطف و محبت میکنند نباشید سرانجام به خوبی در انتظارت نخواهد بود سادکو به خواب رفت، فردای اون روز وقتی که چشماش رو باز کرد، خودشو در ساحل ایلمن و در کنار کشتیهاش دید که همگی به سلامت به خوشگیر رسیده بودن. سادکو مدتی بعد با دختری که بهش علاقه مند شده بود ازدواج کرد، ولی همیشه صحبتهای شاه دخت رو درباره قدردانی به خاطر داشت. بله دوستان این هم از داستان سادکو که از افسانه های کشور روسی است و پیامی زیبا برای ما داره. اون هم اینه که همیشه و در همه حال باید قدردان لطف و محبت دیگران باشیم. امیدوارم از این افسانه خوشتون اومده باشه. افسانه سادکو تنظیم برای رادیو سهیلا خدادادی راوی شیرین سپهرات بازیگران امیر زنده دلان کامیار محبی امیر فرهان نیا گلچهره زند قربان نجفی محمد رضا علی و محین نصری کارگردان بهرام سروری نجات افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار محمد رضا محتشمی کننده زهرا عبد زاده افسانه ها رنگی از زندگی اند افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانهای دیگر بترو